زوجی چنان ندارد بی زندگانی بی زندگانی زوحی چنان ندارد اولا این بیت تو تهاجم من همونه زوجی چنان ندارد بی دوست زندگانی بی دوست زندگانی زوحی چنان, چنان, چنان ندارد آدم فکر که خب خیلی آسون دیگه این یه شعر یه‌ماست که غالبا می‌خوندن من تو مجلس بودم هر وقت می‌خواستن میگن که تکارانو کرراته می‌گفتن که دلبر جانان من، گرده دل و جان من، گرده دل و جان من، دلبر جانان من خب جان فکر می‌دارن دیگه از این مزهره‌تر چیم نیست، اما اولاً یه نقطه یعنی که فقط بعضی شعرها میشه این کارو کرد. کرده او هم به که پایه‌هاش یکسان باشید زوگی چنان ندارد، بی دوست، زندگانی، مصطف ایلون فعولون، مصطف ایلون فعولون دو بده این یه اندازه است بنابراین یکی ری میشه جلو، اون یکی ری میشه ولی اطم بلی فعولون فعولون, فعولون، فعول، که دو تاش فعولون و یکیش فعولون فعوله نمیشه اینجوریش پردن یعنی تازه این قلب کردن این در موقع امکان داره که پایه های شعر یکسان سان باشه مثل همینجا مثل اون همون دل بر جانان من برده جلو دل و جان من که بهر منصرهه مفتح پا ایلون پایلون مفتح پا ایلون پایلون مفتح پا ایلون پایلون پا مفتح پایلون پا که من اینجا وقت اینکه که راجع عروض اینا حرف بزنم ندارم تا این تصدیره، اینه بکشم که اینجا ببینید این که احجاها، سیلابایی که در هر دو جزء به کار رفته، یکی بنابراین شاعر خیلی باید حواسش جمع باشه که این کار بتونه بکنه این یکی دوگمه که مطلب باید قابل این کار باشه یعنی مطلب خیلی مهم می باید باشه که یه دفعه که میگه یه دفعه دیگه هم تحکیدش کنه درست ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگان دوست زندگی کردن زندگی اصلا نیست ذوق، ذوق به معنی چشیدن ذایبه یعنی چشار البته دباً چشیدن هم معنی مادی داره که بنده این چای رو به چشم بینم شیرین یا نه هم معنی بحندی داره که معنای زندگی رم هم آدم میچشه در حقیقت دیگه میگید اوقات من رو کرد بابا اوقات که تحلق رو که این هم زو بیچنان ندارد بی زندگی زندگی به چه درد میکره اگه دوست نباشه همون است که چی میگه بیدوست خات بر سر جا با دوست پنج فرق بهش دست و بی دوست خات بر سر جا چندم میخوچ چک کن یه یه بدعی است که اغلب می نویسن و من الان یادم نیست خطاطا چنین می نویسن که مبسوط از این کاهای بلند درست کردن و مبسوط از کتل که ایوان نگاهشتن این کاها بی سر به فلک برپا اوشتن ها یه رنگ رنگ و درختان میوه‌دار من توی این سر مهر کاشتن همه اینا برای این بود که این است که در اون ها یک لحظه دوست را به شاد داشتن. ورنه چگونه مردم عاقل بنا در خاط خانه ای که به باید گذاشت. یادن نیست این شهر که همه براتون برای تون درست کنن و این همونه. زبی چرا ها ندارد بیدوست. زندگانی بی دوست زندگانی زبقی چنان ندارد چنگ خمید قامت می به اشترد این مثل که چند بارم ارز کردم اصلا فلسفه افیکیور عویغور که بعدها به خطا فکر کردن که مراد عرق خوری و باشی و اشتر کردن و عربیتی شدن از این و اصلا این نبوده این است که میگوید که مرد دانا باید این زندگی چند روزه که داره بعد دو نمیشه یه دفعه روش هنر نیست اگرم دفعه دیگه باشه بعد نمی‌فهمم که تو بودی چه میرم که بنده 10 دفعه میگم به این دنیا بیام یادم نیست که من یه بار اومدم و فلانو که کردم که من اولین یه دفعه خوشدارم خب حالا که تو یه فرصت پنجه ساله، شهست ساله، بیست ساله که تو هم نمیدونی چقدر هم هست <eyed> یعنی هیچ نمیدونی که ایتا هم یه فرصت اختیار داشتن بهتره که تو اینو چه جور میدونی؟ خب به بهترین صورت بهترین این صورت چیه؟ یعنی که خوش باشی خوش بودن چیه؟ هر بخوری، مست کنی، بیفتی نه اپیون بکشی، هیروین بکشی چون تو ها خیر خیلی، آخا میگه که هر شادی کوتاه یا لذت کوتایی که اندوه و ناراحتی دراز در پیداره ازش بپرید برای خوش میگن و هر ناراحتی کوتاهی که راحت دراز در پیداره دنبال اون کار برو این اساس اساس اون چه خیام میگه اون چه حافظ میگه و همش تشویر میکنه مردم رو فرامی به خوشباشی اینه که میگه آقا زندگیتونو رو به بهترین صورتی بگذارونیم طبیعی که اون آدمی هم که هر شب ارد خورد جنازه شو پول بکشن بیارن در خانش بندزن فکر میکنه که خیلی خوشی باید درست نیست سرطف های زخم و زیلی و می بینیم دیگه این بدبخت ای که کنار یافت دستش درازه واسه 25 سنت که از سگی بخوره زندگی این خوش ا اصیر و وقتو میتونست اینه که میگه که چن... چنگ خمید قامت میخواند از خواندن معنی دعوت کردن اینو یایدون باشه که در آثار کلاسیک قدیم خواندن وقتی میگفتن این... این کاری که از روبرداریش بخوند اینو نمیگفتن خواندن خواندن به همین معنی دعوت کردن و فرا این کار رو یعنی قرائت رو میگفتن برخوندن نامه برخوند یعنی از رو بنابر این چنگ خمید وقامت میخونه رو پرشات یعنی تو رو دعوت میکنه به زندگی خوب بشنو که پند ایران هیچ وقت زیان ندارد. یه وقتیاره که مرحوم اقبال عباس اقبال آشتیانی استاد بزرگ دانشگاهی یه چیزی گذاشته بود یه اقتراحی مسابقه نه که اقتراح یعنی دعوت این که یه ده یه سان را در با بیامت که آیا هند و هندرس را زرد میخوری یا نه خب تمام بزرگان ما میدونیم که کتاباشون سراسر پنده با این حال با هیچ کدوب اینا رو قبول نکرد و هممون باختبختی کشیدیم که ناشی از این بوده که اون چه گفتن بعد از اینکه سرمون به سنگ خورده گفتن ای بابا راست گفتم حالا اول همه بابامون هم راست گفت نه همون راست گفت چه جوری نکن بعدم شعر میخونیم خونیم چه نه فلان آها اینو صد سال هزار سال پیش گفتن ببین ما چقدر سیاه نکن حقیقت اینه که شنیدن پند کار آسونی نیست و به هیچ وجه تو آسانی گفتنش نیست این است که ادهه بسیار زیادی انتا آدم های بسیار مزخرف این ها خیلی خوبی هستند. تا میرسه آقا این کار بکن آقا اون کارو بکن آقا پرهیز کن آقا بلندبا رو بخور آقا برون تو جوی دیگه آقا نهان چه بکن؟ اوه خودش که میرسه ایچه. این است که اینه که میگه بشنو شنیدن به معنی قبول کردن بگیر یه چیه بگیر نظامی که خیلی قشنگیم شنیدنه به معنی به زیدن صدا و و قبول کردن و میگه, میگه که نمیدونم هرچه اون کس که گوش کردم ولی نش نشمی کن یعنی رسید اما قبولش نکرد گوش کردم ولی نش نشمی این این اینه بشنو که پند تا معمولا ازم نمیشنه بشر اگر میتونست از تجربه گدشتگانش زندگی کنه در این زندگی مادی دو روزه چیزهای خیلی محدودی هست دیگه کاری که بابا آدم رفته و سرش به سنگ کرده و بعد میگه بسر جون مثلا قمار نکن خوش رو کن آدم وقتی بره باخته بهش کن بد, بد میگه بابای خدا پی امرتزاست میگه اینه که میگه چنگ دو رو بهش راحت قبول کن برای که پند پیران برای تو زیان. ندارد. احوال گنج قارون که یامده بر باد با خونچه باز بویید تا زر نهان ندارد گل که مراد همون گل سرخه وسطش یه ریزه اون پرچم و گردن گرزن آلتهای نراماده گل رنگ به صورت خوده های تلا وسط و حافظ خیلی اینا رو اشاره کرده به خورده میگه چو گل گر خورده ای داغی خورده یعنی چو گل گر خورده ای خدا را صرف اشرت که قانون را زیانها داد سو داغی زرن دو به گل میگه گل بگو ریزه ها رو صرف خوشی بود برای که ذرندوزی پدر قارون دارد اینجا عین این همون احوال گنج قارون که یام داد بر باد با قنچه با قنچه گل باز نشده است بنابراین اون ذر و مثلا قایم کرد. میگه عرش. اون لاکسید نیمید باید باز شد تا خیلی زیگاه است احوال گنج قارون که یام داد بر باد با قنچه باز گویی تا ذر نهان ندارد اما قارون پسر اموی موسا، یک، از بنی اسم دوبام این که بسیار سروتمند همونده من, من نمیدونم این سروتش قابل مقایسه با سروت راکپلر نه همسار بوده یا نه ولی میگفتن که سعدی میگه قارون حلا شد که چهل خانه گنج داشت چهل خانه یعنی چهل اتاق بزرد، خانه این اتاق دو تفسیرها و اینا گاهی هم عوام و ناز اون من دوی خداها قبلا نزی خود چیز نوسیان عدد نداشتن زنشون حساب کار نمی میگه می گه چهل شطور کلیدهای گنگ و قارون حالا و هر حال مسئله اساسی اینه همین با سه گفتن شعر او را برشماردم سیزده ره ست بزار یعنی یه میلیون سی هزار اگه یادمون باشه که شاهانانه‌ی فردوسی که الان داریم الان داریم در حوض 500 هزار فیسه یه میلیون سی هزار میشه بیس و شیش به فردوسی میشه اندار. و اگر بخونیم شعر او را بر شما دارم سیزده را هزار سیزده شما که البته این درست نیست بعد یه هم پوزون آید اگر چونان که بود اگه بشموری باید زیادتره سیزد همشه مورده نفر میدید که باید چقدر میدید حال حالا اینو ما اینجا اصرار نداریم که بگیم که حتما روست و نخی یه ملیون سی سرزاد یک یه چیز از این میفهمید اون از که رودکی شاعر بسیار شعری بوده رودکی خیلی یعنی طوری بوده که با نظر اول که آدم نگاه میکرده فکر تکنی شعرش خیلی گیر این دیگه ایش درش هم همینطوره حالا کار نداریم به دینا رو پرکن درهنش که حساب خوب کنیم تا سنت آخر مالیات چه ما نمیخون که ما آی آر که نیستیم که فقط میدونیم که بسیار مرد توانگری فقط و که در مرد توانگری فقط این روز حدیر سمینانی، فریح مرد گفت که اون صاحبهش گفت سرمون این حبای صاحب توی بده حق مردم می روار و بده به کار مردم برز این روز چون این بولا از راه کشیدن شیگه مردم می بده اصمید دیگه ویلا کار آدم دلخواست ساعت چقدر از هر چقدر صاف کنه اینجور نمیشه برای, برای اون پولا باید یه ست نفر دیگر هم چیزشون رو نمیشه هرچی کنم این گوشکه نکرد که هیچ شروع کرد به این که نوسا زن بدکاره ای رو محریب کرد یعنی خرید در حقیقت که بیاد و در حضور جمع گوانی بدید که نوسا که دعویی پیرنبری می کنه ما هم کارهای بد بد کرده و به این ترتیب موسا رو بیابرو کنه و حالا شهرش بکنه حالا من جوزیاتشی شدم می که خیلی بلی جلعه در در جلعه کتاب اینا ندارم اشت مراجعه کنه یه دوارت رو مارد کچولور موسا حق مثلا آدم نگاه میکرد یا ده خدا رو آدم نگاه میکرد به راحت هم جوزیات نوشته بس. ولی من ندارم. خلاصه حال نمیدونم زنک میاد میگه یا اینکه که بعد میارش با اون جذبه ی میگه راستش رو بگو این بلاخره میگه که بله این توی و من خریده من قارون شنید یا حال فا بعد قارون دعا میکنه و میگم قارون با موسا دعا میکنه و میگم قارون با گنج هاش در زمین فرو رفت تا قیامت همون تو زنکی میرد گنج قارون در... در زمین فرو اینه که میگه احوال گنج قارون که یامداد بر باز اون همه که اندو هیچ بهره ای ازش نبرد به حقیقت این است که هیچ کنوم از این پردارای بسیار بسیار گنگ کلو هیچ بهره ای از پولشون نمیبرن. حتما با خونچه باز ای تا زر ندارد کس در جهان ندارد یک بنده همچه ها چرا؟ زیرا که چون تو شاهی کسی در جهان مده یادم یه روزی بیام بیاموز سادات ناصری حسن سادات ناصری، دکتر حسن سادات ناصری هم کلاس ما بود در دوره دکتوری دوره دکتری جایی بود که می دوره های مختلف این چانس که با اونجا میمونده دو سال، چهار سال، پنج سال، هشت سال، ده سال من سال ستی و اونجا بودم کسی بود میکنم من از سال هزار اینجا یکی از دوستان گفت خب چرای نمیری وقت بگیری از استاد امتحان بدی و بالا جرعت نمیکن هل که اونجا همه هم دوره با سید ساده با ما همداره بود خودش که امازه مرد و خوبی بعد یه روز استادم خوب... استاد خیلی آدم درجیگه که مهمه، عجیب و غریبی حرف زیادی به آشش نمیشه میشه، مطلق این آدمی ای که یه روزی آدمی که اعتقاقاً از استاد تنقیباً مجاز هم بوکیگاه خوشمزگی کنه استاد در محسنگی راجع به بواسیر می‌فهندن که انظار تف قدیم بواسیر جور بیماریه برای اینکه شعر مولانا رو معنی کنم توضی می‌ذادن که مثلا در کتابی تف قدیم گفتن که این دونش مومین جون بواسیر حاصل می‌شه از این وردی که دوستم بود و بلا ارادت هم خدمت استاد داشت گفت استاد نواسیر چیه؟ نواسیر جمع ناسوره و ناسور در عربی یعنی زخمی که خوب نمیشه. است و از آن چیزن یه مرکز چکیز از داخل وزنه که این راه پیدا میکنیم یه نمی چکیز میکنیم تا اون مرکز و اون مجرار رو حاملا داخل نکنیم از بین نبری این کامونه هرکی آنتی که ما اصلا پایید این نواسیر کار ندارم گفت چند آنست نواسیر چیه؟ استاد درمودن که نواسیر یک نیست و سر زبان آدم در می آوید حرف نمیزنم سادات <تص> استاد داشتن هر دید که ما چنین بودیم چنان بودیم مثلا وسایل نداشتیم یا ما مثلا استادای به این مهمی داشتیم آدمای به این بزرگی داشتیم عدیدی نشاهوی داشتیم عدید بیشاهوی داشتیم یه دفعه سادات ناصری گفتش که ولی استاد ما یک چیزی داریم که شما نداشتیم استاد براخ شد یه چیه گفت چیه گفت ما استادی می شما داشتیم شما همچه استادی نداشتیم کس در جهان ندارد یک بنده هم تحافظ زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد تیستون بخون دوشنیه قرمتشون ما ندارد کشه تو گلگونه گیا ندارد گوشه عبور توست منزل جانم پشتر از این گوشه پادشا ندارد دیدمان، چشم درسیه که تو داری جانب هی جاشنان نگاه ندارد وقت گرانم دی، مرید خراقبار دفت گرانم دی، دی، مرید خراقبار وقت گرانم دی، مرید خراقبار شادی شیخی که تو نگاه ندارد او چه کند با روخ تو، جود دل من آیم دامی که تاو آه ندارد اون خور و خاموش نشین که آن دل نازک تاحت فریاد دادخواه تا ندارد نیمن تنها نیمن تنها نیمن تنها که کم تاوول دلپت چیز که دا اون داویی یا ندارد شوخه نرگست نگرد که پیش تو بشکو پیش نگاه ندارد خوب این بقمے دیگاشو هر کی آس را ندارد حاضر مکن گنا خیلی غزل معروف من شما هم در دربیرستان اونجا ها اون چیز یاد گرفتید من معلمی داشتم در کلاس طیفه و خیلی تحصیل شمستم خدا رحمتشونه خیلی در تردیهت من تاثیر داشت میرسد علیفان میرفضریه ولی محل خود در رسیم این بود و خیلی آدم که با رسطه ی این قهزل او اول بار در سال تا 16 در دریستان علیه خون و من روشنیه طلعت تو ماه ندارد نه روشن بود چیک پیش تو گل رونق گل ارزگرد همچی گل ترک پیش تو گل رونق گیاه ندارد بیت دوکم اونجوری که من به خاطر دارم و در حافظای اون روزگار بود بوده گوشه ابروی توست منظر چشمان یعنی محل نظرگاه چشم اینجا از گوشه ابروی توست منزل جان. هست. و بعد مسئله جالب توجه اینه که سه و چه ده تا نسخه هست نسخه های خاندری یک دونش غیر از این همه شون هم شه ابروی منزل جان بنابراین اون منظر چشمم بعد درست کردن بیرد چه ابروی توست منزل جانم خوشتر از این گوچه پادشاه نداره. میدم و این دیدن اصلا به محلی تحمل کردن و توجه کردن و فکر رفت گردن و ناکنزم هست میکن دنیا را چگونه چجور دیدونه یا فلان آدم اول بار آشنا شده با شما نشته هر صده بعد میکن فلانه چجور دیدی؟ این دیدی یعنی چجور در نظر مزار آوردی؟ چجور شناختیش؟ به نظر کی آمد این اونه و به خصوص وقتی باد و عطف میاد پشت داریش. دیدم و آن چشم دلسیه یعنی کاملا دفقت کرد کاملا تعمل که هیچ تردید در این کار ندارم که کی دارم دیدم و آن چشم دلسیه که تداری جانب این چاشت این دل برای چشم خیلی زیاد اینکه مردمان که چشم همه چشم هر رنگی باشیم مردمان که ایست که مردمان که اصلا چیزی راقه راقه که توی تاریکی راه میبره و سیاه بنابراین معنی ظاهرش می که دلت دل چشمت سیاهی هست در زم درسی ها بانی بیره و تهم دخشش و نام هست که اینجا حافظ به هر دوتا نظر دیدم آن چشم دلسیت که تو دارید جانب این آشنا نگاه جانب نگاه داشتن به معنی مراحات کسی رو کردن این اصطلاح بگذار سعدی میگه که خیلی به اینکه زیبایی سین چه سعدی که نخوام بخونم احیانا دوستان که یاد داشت کنم بعد از پیستشون میره بعدی میگه که تو می رویدی و, و مرا جان و دل به جانب تو تو می و مرا جان و دل به جانب تو ولی چه سو که جانب نگه نمیداز بنابراین جانب نگه داشتن همین که حالا میگه ترفتاری کردن میگه تو اینجا من را جان و دل به جانب تو ولی چه که جانب نگه نگه تو یعنی چی جانب نگه خرای خرای رسوار الان طرف طرف, هم طرف, طرف یعنی داد چی؟ نه خیلی مراهات خاطر کسیه دردگی میپرم خیلو خون ولی به که نه دیگه اسمه این اسم معنی است دویدن مثل اون در اونجا به عنوانی که واسه سیاه بعد و عنوانی این هم جانب نگرد داشتن طرف کسی رو گرفتن الان میگیم بلان کس طرف بلانی رو گرفت طرف کسی رو گرفتن یعنی پشتیبانی معنوی از کردن بله، بله، بله همیشه همیشه توجه بفرموین که لغت یا اصطلاحات برای معنی های مادی برای معنی اسم، به صورت اسم ذاق به وجود میاد. یعنی نون به وجود میاد داره اون خوراک پرو بعد به صورت اسم معنی وعنی در اومد به معنی فایده وعنی صود، صود یالا سن میگن پولای نونش تو روغن. اصلا در نونی هسته روغن هیچ، ولی در این حال چون نون رو اگه چربی داشته باشه قدیم که کلسترول و باسیات نبود. نونی که تو روغن زده روشن بشه خوشمزه میشه اینا میگن پولای نونش تو روغن یعنی ورزش بود وقت این کار به جایی رسیده که دیگه اصلا قصه نون و روغن اینا فراموش شده اصلا. حالا که میگن پولای نونش تو روغن یعنی کارش کرد. اصلا کسی تصبر این که نونی در فساط کشه یا روحانی در از نونی نینی کنی جانب داری هم تو طرف کسی دو میگه داشته هم مرادش با این که طرفتی هم مادی. مادی هم می کنید؟ بله چرا نمیشه؟ دیگه دمه هم چشم درسیه که تو داری جانبی هیچ آشنا یعنی من تنها نیستم اصلا رتل گراننده ای مرید خرابه رتل یه نوعی پیمانه است و توجه داشته باشین که این که پیمان ها به صورت خیلی دقیق برآمده، حالا عصر ماست، قدیم هر شهری برای خودش یه وزنی داشته. حالا من یه مثال برای هممون میونی هست. ارمول شهر قفله الفا مارینو. من وعده فهم من به یاد دارم یه من شاه داشتم که معادل 6 کیلو بود خیلی بچگی من حالا که فراموش شد یه من شاه داشتم که مال اصفهان بود و یه من تبريز داشتم که مال پیرون و دیگه بود که معادل 3 بود خانم لانتون استاد معروف دانشال لندن که متخصص ایران هم هستو حال های سوال هم استاذ در دانشگاه لندن و حالا بادش ازشده و یک تونه درجه به کسی ندره وقتی اکیه میخواد پارسی رو خونه قسمه لقیت بخونه دیگری میخواه باید کار کنه، پایده ندره یک کتاب نوشته اونام مالک و زاره در اینام که ترجمه هم شده پارسی و مترجمش هم خیلی خوبه دکتر عرادیت پارسی، دکتر منوچه رنگی ترجمه کرده و بنگاه کرده. اگر کسی باشه میون شما که علاقمند باشه مسائل ارزی و مسائل کشاب عرضی یا یعنی این حتماً این کتاب رو بخونه برای که این نخونه اصلا نصف اطلاعی بخونه. خیلی چیز است این کتاب مالک بزاره در این هم پرجمه ای دکتر منوچهر اندیلی پحلیف دکتر لامتون انتشارات بونگاه ترجم نشد یه یعنی چند تا پیوست داریم هفتان بیست ملحفت یکیش درباره باره منه من واحد وز مثلا 20 تا سی تا غزت من مختلف که من فلان جا وزش اینقدر من فلان جا من, فلان جا من, فلان جا من فلان جا هر جایی برای خود چونیش اون که اثبات خیلی کم بود این اختلالی هم اینجا نمی‌کرد. یه شهری بود برای خودشونم رو می‌باید می‌داشتن، کارشون رو اگر یه وقتی یه قاجه می‌کنیم می‌خواست سعادت من جایی که حساب می‌کرد که این گرفتاری تولید نمی‌کرد اینجور نه که ده هزار آفتا توی از جای مختلف بیان بعد وزن این شهر نفعه هموند که شیراز وقتقه داشتن، نیم وقتقه داشتن، نیم از داشتن رتلاً پیمانه‌ست باید به با اندازه همین جلل اینا بکنیم کنگرد برای اینکه همیشه میگن وطلی گرام بل اگر شو با اغلب اغلب با از کنم که میخافگان یا حالا این لحظه. که بال افتر به رفل گران کنم رفل گیران کنم که باده به گران کورن رطل گران زفر قومت دید کران کورن در باده نور آرز معشوع دیدم رتل گران به قفت بازو دیان کورن من همون توی یه بیت بسیار زیبا هم داره که نمیدونم ملاحافظی یا نه ولی من این بیت رو شما میگم که این در ذهن نگه که یکی از بهترین بیت هایست که هر سال تو پر این نیست می که با دوستان خوران چطورا هست این همون باز چیز افکیویه با دوستان خوران چطورا هست پیش از آن بعد از تو دشمنان تو با دوستان خوران دشمنان یعنی بچه ها اولادوکم حدیث آیه قرآن هم با دوستان خورم چه تراح هست پیش از آن بعد از تو دشمنان تو با دوستان خورم خیلی العاده سپاسی خوب بلاده قشن خوب کاری میکنم خوردن میسکردم خوردش بخورد منسوب به حافظه من است حافظه نخیر ویدوتو بسین رطل گران هم مثلا من شام بوده یعنی آره هم دیگه پیمانه, پیمانه بوده پیمانه نستات بزرگ ها البته رطل و رطل بوده نه من رطل شاهی بوده ان با مش هست. مشخصه فرهنگ بزرگ میاد حتی تا با این موینم میگوا کنه حتما هست به خدا اینا توضیحات بیشتر هم داره ولی به هر حال متفرقه عرضم میگیری بعد واقعیش با میمونه مثل درهم و دینار اونها هم که هست هیچ داری نوشتن قدودن هم میدونیم بین چهار تا پنج گرم بودن ولی شهره مختلف وزنش پرد بشتی رتف گراننده ای مرید خراب هست شهادی شیخی که خانه اولا شادی خوردنه که جلسه پیش شادی خوردن خوردن سلامتی عرض کردم و عرض کردم که در در ایران وقت نی بساری میگفتن شادی شما این چند این که نی حتما سلامتی که نه اگر نخوشی نده سلامتی حتما نمی و گفتن که چرا میگفتن سلامتی؟ دوباره تکجار نمی کنن. گفتن که نش میدن ولی گفت ملنسوتین رقیه روزیم بر گفت میدونیم میخوام چی بگم؟ گفتن نه گفت چرا شما خریم من با این مردم خرچی بگم؟ <تصفح> قردان امایه گفت میدونیم میخوام چی دو کنیم گفتن بله بله، خب صرف میدونیم چه روز سبا مایه میدونیم میخوام چه رو گفتن بله، بله گذنم، بله، نه خیر بله گفتن، اون‌های کی میدونیم ارز کنم که فیران اارز که حالا گفتیم، از کنم که شادی خوردن میگفتن دو سلامتی خوردن و جام رو تو برد داشتن شعاری که که شادی شما یا شادی دوستان در اولین قصیده یعنی قدیمترین قصیده ی زبان فارسی هم که از مال روزکی مادر نیراوکر باید قربان بچه ای او را گرفت کرد زندان که در سال 325 یا قبل از 325 ساخته شده اولین قصیده تا متمام زبان فارسی که به دست ما رسید. اول. اولی اولی تاریخ سیستانو داشت. در ماده یکی از بازمونگان یعقوب لیث به نام عبو جعفر احمد ابن محمد بعد اونجا رو با آداب و ترتیب اینا هم میگه که بعد جامع می رو بیارید و بدید به من و من این بیارید تو این جیبو و اون دو جام انگلی باشه و اون چی دو باشه اما من بخورم شادی رو جعفر احمده این محمد یعنی اینه شادی بود. خوردن بوده خلصه تو داستان از خیلی شبایی زیادی یک جمعه یه جای دیگه هم حافظ بره که خوندم نغض گفتان بطه ترس دفعه بود سرهم سره هم گفتان نغض گفتان بطه ترس پر است. باده شادی روی کسی خورد کس رفته رفت گرام مرید خرابات شادی شیخی که خانقاه نداره ارزم که شیخ در هر امن قدرت تصوف نفر دوم نفر اول پیر در هر سلسله ای یک گونه پیر سرپرست کل درویشانی است که اون سلسله پیدا است الان مثلا آقای دکتر نور بخش پیر سلسله ی... دینتون دو سلسله ی... در که از ریاسته چون گنابادی خودشون نعمت الله شدن. بعد این پیر ممکنه 50 تا خانه‌گاه بشته باشه موری تا در جاهای مختلف دارد. اینا میخواند بیا وقتا این سلسله بفیلمنده پیر یکی زیرو در هر خانه‌گاهی از طرف خودش میگذاره که سرفرستی اون کار رو بکنه او رو میگن شیخ شیخ رو میگن. اگر علاقمند به جزئیات این قضایه باشید کتابی هست در احوال مولانا به نام مناغ بلعارفین من آقا بول عارفی نه افلاکی شخصی اون هم استاد ترکی هم که مرده خداش بیان مرده تحسین یازیجی این در در ترکیه چاپ کرده در ایران هم چاپ کرده ایران براغونه خاشت اینجا هم بیده میشه من آقا نه اونجا این داستان رو میگه که مولانا پیر طریقت مولانیگیه بوده و بعد ببین چه بی معرفتی هایی می‌کردند گاهی می خود پیر مسلحت میدیده که یک کسی رو بذاره به عنوان شیخ یه خانواهی اینکه نمی‌دهند این میگه آفز می‌گه وقت دیر مقام می‌دهند باز این سالکان نگر که چه با پیر این چلپی عسام الدین مولانا می‌خواسته بذاره جانشین خودش یه دوی زیر باره نمی رفتن؟ فرحان مولانا ناچار بود اگر دهتخان قادشتی و حتی شیخ تعین کنه برای این دهتخان قادشتی و در حقیقت آدم که دستگیری می کرده یعنی می اومدن به دست او مشرفه به فقر می شدن و وارد به سلسل تصفف می شدن اون شیخ بوده برای اینکه پیر اه... یک خود دولتر. سختر ها بلاخره خانواه یه سیاستی هم میخواد نگه داشته. یه حساب کتابایی هم بلاخره یعنی اون شیخ بلاخره میخواد که موریداش زیادی اونجا جا بدن بعد ممکنه وسایلی هم تحطیب بدن با دارن از پشت آهوگردونی کنن و موریدان رو سینه کنن از این بران براتی دارن که آقا و کلک های این هست که نوشتم تو کتاب ها پتیه رو آب خیلی بیشن و اگر کسی حقیقتن به بارسته باشه باید زیر بار شیخ شدن نده من بارها اینو گفتم که آها پیر آه پیر سوسیگیه گفتم اولا که من دویس که آدت و آدم دل سیاهی بودیم از بچگی هیچی هم بلاخره نفهمیدیم تا این سن رسیدیم و یکی از چیزایی که نفهمیدیم اصلا اینا رو ما و ولی به نظر من میاد که وقتی که مثلا میخونم تو کتابی شمس تبلیزی آمد و مولانا رو اونجور منقلب کرد قرار هارو که می‌زنم اصلا کار ندارم ولی زندگی این بابا عوض شد دیگه کلیه چیز دیگه شد و این کارم نتیجه برگرد با اون فیلمارت 60 چند ساله‌ای سوار پیر گفتم بعد مثل مغناطیس اون بکشه به خود یعنی جاذبه داشته باشه که وقتی که من دیدمش بگیرم دیگه, دیگه از تصرفیه این بیرون نمیتونه نه اینجا شمزه تو واسه و وسیبه باشه و گلاخ بندازن تور بندازن و راستوریس بادارن بکشن آدم اون تر این کسی بود زهی سعادت من،, من از خدا میخواستم که با کشن خودم نفهمیدم این کسی بود دستان بگیره از این راه آدم که نشونیم شاید این کسی دستم بگیره برای آدم چید ولی یه نفر من پیدا کردم اونم میگو که من این کاری نیستم <تصفيق> <میکره> <تصفيق> این دلیل پیری نمی کنم خب میگو یه آقا من چیچی هستم من اصلا ناقص روزگارم من باید به خودم باشم که چیچی دارم این شیخ بیخانگاهی میگو شابیه شیخی که خانگاه نداره به من دفری گرم رفت لگران هم دهی مرید خراب ها شابیه شیخی که خانه نداره برای اینکه یه تصبری راجبی محطلت به شما بدم یه مردی بود به نام حاجم اللعب و صدیر این مرد رو من ندیدم یعنی وقتی که مرده من مثلا هفکس بود دوستا دیازو مثلا مرد. این یکی از واعظای درجه اول تیرون بود به طوری که کسانی آسمی و نفیسی و ملک و شعرها اونو همتال نمی رفتن پا کرد. اگر اسم مرحوم مرتیزا کیفان هم شنیده باشید که جزه گروه اول سازمان هست اعدام ای شد این جد پدری مرتیزا کیفان این برای اولین بار گرابید به گناب بهاد ملو سلطون سلطان علیشای گنابادی با چون بسیار نفوز کلمه داشت روی منبر تبلیغ میکرد برای گنابادی ها و من جب که ده زیادی ده بسیار زیادی روی ارادت به او به گنابادی ها به بعد هم از ایما برید و گفت که قلتش این است که من گفتار اینا رو مطابق کردار ندیدم و روشون درست نیست اون که باید نیست و من تمام آتیم اینا رو همه رو تدا میکنم به این ترتیب برای اینکه الان چند هزار نفر هستن که هر کنون بگم بمیر میمیرن، ولی من نمیخوام اینا رو میخوام گردن من بذارن که اینا رو به کمال برسونم من خودم ناقصم من سر تا پا هم عیبه من چجور مسئولیت اینا رو قبول کنم من نمی کنم کتابی درشته هم کتاب استوبار که در همین دانشگاه بهتی هم و اونجا می گوید. می گوید که اون که دعویه پیگی می کنه و دعویه و در این بازیاره رو میکنه اصلا همون دعویش نشونه اینه که این هرش محور فرانه که شمس تبریزی همچکاری بمیکرد که عدس قرآن هم گوش در رفت ملازمی فرمید؟ این است که خود این بساط و خود این دعوی کردن و خود این تحطیق دادن و علت این هم این است که حدیثی داریم، حدیثی از قول پیغمبر داریم که اولیه هایی تحت از لابی لای عرف هم غیب اولیه من زیر قب و های زیر کوشش های من و هیشکی از خیر از من حال نمیشه بنابراین حالا چه جور بشه که یک کسی سعادت یاری کنه و یکی از اینا بر بخوره راه ببره و او قبولش کنه و واقعا دستش بگیره ببره این چیزی نیست که از با وقالی هر کسی یه دکه با و از هم تیب که کسی اینه که میگرد به گرانمده این مورید خرابات شادی شیخی که خانقاه ندارد تا چه کند باروخت روز دود به دل من آینه دانی که تاب آه ندارد باید توجه بدم که آینه ها در اون آهنی بوده آینه, آینه شیشهی مال بعدی البته درا بهتون که کهشر و هم آینه می آین صورتت دیگری هست از آبینه و گفت بازن در رو نمیگن آینه کاف داری. آینه هم آینه. احتمال این هم هست احتمال این هست. که در روزگار حافظ به خاصیت عدسی و همین که اینک بتونه کمک بکنه برای دیده چشم و اینا پی برده بودن اون چه مسلمه و هیچ تردید نیست و سندش هم هست در قرار جامی که سریحا میگه جامی سریحا میگه چشم من اگر مدد آبگینه شامی نباشه اصلا تو یعنی جامعی در قرن نهم، اینو به استراحت گفته ما هیچ ترمید نداریم که در قرن نهم هم حالاته اینکا این خوشگلی و به این مرتبی و بای نه و نمازین واضحی ها نبوده همونه یه چیزی بوده در احتمال این هست که در دوره حافظ یعنی یک خودترم بوده باشه برای اینکه در ونیز، کار بلورسازی و شیشکاری و این حبا قرنهای سابقه داره. و یادم ارمان دکتر خانلدی فرمود که این بیت حافظ مراد ازش اینکه بر این دو دیده حیران من هزار از که با دو آینه رویش عیان نمیدید در این آینه هم اینکه این نظر دکر خانلدی البته به خصوص اینجا ها، اونجا مسئله تحقیل خیلی زیادتر هست ها که زاپون برد به نظر من که مراجب واردن نام و به دارات و محارفه میتونن دنبال کنن ببینن که واقعا این کار، کار به و چیزهایی که صادر میکردن در قرن هشته هجری، در روزگاه که حافظ زندگی میکرده، این پخش شروع بوده، نشده بوده،, بوده، نبوده و هر حال اینا مطالب دوستان باید زحمت بکشن و دنبال کنن که هست اما آینه ای که مردم به کار می بردن این آهانی بود و نه تنها آخ باعث اکسیده شدن می شود از همین جور که می زاشتن بعد از مدتی خودش تار می شود همین دقیقی یه عده ای بودن که می نمیزن سیغلگر کارشون سیغلگر بوده سیغل می سیغل رو با اینا نمیشه ستابید آورن که خط خط میشه اصلا نمیشه کار سیغلگر کار چه میگرده من خبر ندارم مثلا شمشی رو میدادن جلا میدادن مثل آینه که یا آینه های فولادی رو سیغل میدادن و از اون زنگ رو که تصدیر رو مولانا دارید یه همین رو آینه دانی چرا قماز میز زانی که زنگار از رخش مقداز نیست رو تو زنگار از رخ رو پاک کن بعد از آن نور را ایدار بنابراین آینه دانی که تا آینه آهنی بوده که بعد تاب آه که نداشت تو هیچی اصلا همین که تو هوای که میمونده و از یه این, این تاج چه, چه کنند با رخ تو دوب به دل من آینه دانی که تاب آه ندارد روی معشوق رو با آینه تشکیل کرده و. خون و خاموش نشین به خودش میگه خون و خاموش نشین که آن دل نازک دل نازک معشوق طاقت فریاد دادخواهی نداره دادخواستن ظاهرا با فریاد زدن اینا از قدیم چیز بوده همراه عاشق که جامعه لباس سرخ می پوشن لباس از کاغذ سرختنش رو میکردم یه چیزایی هم مثل پلاکار دستشون عرایزشون رو در یکی دو جمله مینوشتن که کار هست میشه چیه و این ارزهان رو روش گفتم قصه و این کار رو میگفتم قصه برداشتن قسطه برداشتن یعنی بابا شکایتش یا ودمقی شد در دو جمله بینیمی سه و ببری یه جوری که از صد متری همون خانه حاکم یا هرگز باید بسیار کنه برینه این چیز بود قسطه بود به این معنی توی حافظ آمده شیعه بود بابر یار م... میگه بر این فقیر قصده ای آن محتشم بخان قضل 407 نسی خانده دی. ای پیکر آستان، خبر, خبر سر به ما بگو احوال گل به گلگل دستان سرها بگو بر این فقیر قصده ای آن محتشم بخان با این گدا حکایت آن پاچه و روشن کامل کن. عرض کنم که هان برتر است بیت دیگرش بیت ششم هان برتر از قصه ارباب معرفت یعنی اون جلو بلند آن توی نسخای صاحب شده جان پرور است قصه ارباب معرفت مخخره است هان برتر از قصه ارباب معرفت رمزی برو بگو حدیثی بیا بود چیزم هست که محتاج قصه نیست گرد قصد خون ما الان نیست, نیست جان عرض حال و شکایت و این وضعیه لازم نداری محتاج قسطه نیست گرد قسط جان ماست چون رخت از آن توست به یک ماه چایجه نیست که بارها به همین معنی دقیقا هست نی من تنها کشم پتا قول زل پد تطاول از کلمه طول، یعنی دراز، تطاول این دست دراز سعدی میگه تطا شجریان خونده اینو خیلیان خوب خونده. تطاولی که تو کردی به دوستی با من،, من به دشمن کن که هیچ نبزم یعنی دراز دستی نی برد برد برد. من تنها کشم تطاقل زرفت که ایست که او دا سیاه همه گرفت کار من شوخی نردیس ببین شوخی و شوخ پر روز اصلا به خوشمزه بینیست در قدیم ترین ادوار شوخ به من چرد که تن بوده که دلاغ با کیسه میگرفت. عطار شوخ به این سعید مهنه در حمام بود قائمش گفتاد قائم یعنی دلاغ که وینس چک کنه آدم قائمش گفتاد مردی خام بود شوخ خاور در بازوی او جمع کرد آن جمله پیش روی اونا دیدین یادتون هست کیسه که میگین در لکه پشت کمکشید خانمان نمی دونند باتیم حالا آیا می دونند؟ در لکه پوست کمکشید من می آوردم اینجا بعد انجرم کمی ایندا کش مقصود دو چیز یکی که آن خیلی چیک بود دونید ازش میگم دو بام اینکه بیرونی مخفوق کیسه میگه شو خشای خوار در بازوی او جمع کردن تو پیش از او بعد از شک بورسی که قربان جوان مردی چیه شیخم گفت جوان مردی اینه که چرکتنه و از اونجا روشون نگید نشونشون نگید <تصفيق> <تصفيق> حالا دارم میگم بیام پس اول شوخ <تصفيق> معنی چرکتنه بعد شوخ معنی پررو و شوخچشم چش نی همون چشم دریده یعنی همینجا البته این جز اعتحادات عوامه می که حیا یه ای داره و اگر کسی گرفتار فساد بشه یا باش کارهای بد, بد بکنن اون پرده حیا دریده میشه شه و پررو می شه آدم دیگه گرفتار میشنن و بدبخی داشتن بچیدی و حرزه می شنن اینا می که این پررویش برای این که پرده حیاش دریده شده در هر صورت این چش دریده اشاره رو بود اینگه شوقی نرگس ببین یا نگر که پیش تو کو، ببین نرگس چه هفر روه که در برابر تو باز شده چشم دریده میگه چشم دریده عدب نگاه نگاه بر آدم برویده نفس عدب می کن فکر که در و برو آستین به خونه جگر شوی هر که در این آستان راه ندارد عرض کردم قبلا که آستین خیلی کارا داشته اینو مفصل قبلا گفتم. گشاد بوده از تو درناش هم بسته میشده و حتی همیان ذر رو توش نگنگشتن دسمال و گل و هم دوران 4 چیزها رو و اینکه میگن فلان کس اشکش تو آستینشه یا حافظ میگه کسی آن آستان بس که جان در آستین دارد یعنی خیلی حاضره نمیدونم دست بس میگم نه یه کاری داش این بوده که آستین در, این در هم گریه اینا رو کار دستمالم می‌کرده گریه و نمی‌دونم اینا رو از پای خرده بگم که هنوزم آدم‌های عادی این کارو می‌کنن آسین و آستین به خون جگر شو یعنی خونجگر جگر توب آستین پاک کن خلاصش. نه اینکه حقیقتا آستین رو بشورن گو برو و آستین به خون جگر شو یعنی خونه جگر به آستین پاک کن هر که در این آستانه راه مدارد آستین و آستانه تجنیس ناقصه توی اون همون که خوندم هم هست جناب عشقا در بسی بالاتر از عقل است کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد آستان آستین پناسب لفظی داره و احساس زیبایی میکنه آدم وقتی الفاظ به این صورت حافظ اگر سجده تو کرد مکن خیلی چون سجده رو باید به خدا کرد سجد، سجده و ساجدی درست سجده حتما ما از <تصفح> در تصوف میگویند که مورید وقتی نماز بگویم وات صورت پیر جلو نظرش باشه. درست به همین دلیل که مورید که خیلی اول راه او کجا و جلال خدا کجا؟ تنها واسطه‌ایی که او رو می‌تونه به خدا رهبری کنه پیره و به همین دلیل باید خودش رو قبل از مرگ مثل مرده به دست پیره تمام اختیارات زندگی‌المیته و اینه یده‌ی البستار اینو خیلی باز لازم لازمیست کوزی بدن به نه‌ی سجاده رنگی می‌کن که پیر مقام می‌گن که سالک می‌خبر نفذیر راه رسمتی یه پیر حکیم روحانیست، طبیب روحانیست همینطور که طبیب جسمانی شما وقتی کسالت پیدا میکنید میدید پیش او و تسلیم او میشید که هرچی گفت بکنید طبیب روحانی هم میتونه تشخیص بده که شما عیب کار باطنتون چیاخست همون وقت مطابق اون چه شما گرفتاری دارید، شما رو شما میکنم کردن بناباری باید تسلیم محض باشه آدم در برابر پیر البته اولش ارز کردم اختیار کردن این پیرکار آسانی نیست اما اگه پیدا شد دیگه باید هم تسلیم باشه. حافظ اگر سجده تو کرد مکن ای، کافر اشقی سنم گناه نداره اشاره هم تسلیم کامل در برابر پیر چون خانما گلوندن که چرا ما نگفتیم اینا خانما مرعشی لطفا هم بخونم آ اینجا چیز نمی کنیم اگه کسی غیبراق باشه برای خوندن باز خدا مونه برای به هر حال بنده هم چون خودم جد جنس مذکر هستم چونیدن صدای لطیق زنانه برای هم زیباتن هم هست داختالب اگه هستم بسم الله یه چشم نیست بله بفنم نیست در شرخ می که بگم معافه داری وقت من یار شده وقت من یار شده وقت من یار دفع. شش سرما. شش سرماشش پنج. آشه سوخته دل. سوخته دل. دل نمی‌کنه نه. آشه سوخته دل چه دل روز که باید از دل نشو ای منازویم نشو اگر این اگر این ای در شیار در وقت اون که ما که چه سال به هم جمع ما صدا می صدا, باز؟ صدا صدا باز سامری کیز جام مینایی میز جام صد دره تنگلیز من از, دست... از, سی... از, سی از, از جا ببریم سرخیز افداد به تابه یکی از اینه زیبارش درد کمک سیستان صدا ورداد دیار بسیار بسیار زیبایی او قلعاده و یه مقداری گلست از روز و روزگار و یه مقداری حس به حاله و یه مقداری گلست یه مقداری از این شعر آشغانه ی حافظ بیشتر در محت شاه شجاعه و اگر نگاه کنید میگه که نمیدونم فلان نرگس نرگست رو سر ولی خوب که دقت کنید میبینید که نه صاحبت عشق بازی با پسر نه صحبت عشق بازی با زنه دوم نیست دقیق که بشین اینا اونایی هست که خطابش شاه شجره در حقیقت قاعده صورت گله قاعده سنت حساب و همسر اینا هست قضیه نمیتونه با بیشتر بیشتر روزگار شاهی و حافظ هم در دوران شاه شجره گذشته یک دوم اینکه دوره مزفردی محمد پدر شاهش جا حافظ یک کلمه راجبه محمد مزفر ایچی نگه جز جز انداختن تیرهای جانسود تحنه ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز مست دست در حقه او کس این گمان ندام <تصفيق> در میخانه خانه خدا یا من ببستند که در خانه تزبیر ریا شده. جز این یک کلمه هیچ اسمی از چید با شاه شجاع دوستی بشته همینجوری که با ابو اسحاق قبل از, قبل از مبارز اکتیم با شیخ ابو اسحاق هم همینطور بوده اونتا دوران شیخ ابو اسحاق اولا خیلی کوتاه بوده دوم گمید که خاجاخس بدهی بوده بیشتر شیرها در اصل شهر شجاع بود در لبشت برم نیست در شهر گلنس از این که دست و بالش تنگ شده و کسی نمیاد. رهنی. میخواد بره بود. نیست در شهر نگار که دل ما ببره بخت هم شود رخت هم بخت و رخت باز تحجیز نابست تناسا به لفظی داره زیبا میشه،, میشه و رخت به معنی لوازم به خلاف اون که جامعه رخت خواب رخت خواب یعنی چی؟ یه یعنی دعا فردو شکل پکر ملافه لباس نیست که رخت سفر چی یعنی خورجین و چمه دون رو رخت طور رو که میگه یعنی لباسین وقت هم شود رختم رخت از اینجا ببر. کو حریفی کش سرمه کش به زیبا و دلربا و دلبر ارز کنم یه دویه قذلی بذاره شاید هم این منصوب شهر کش درکستان یه دست شهرها هستش در عدم فارسی به عنوان شهر حسینخیز معروف شده اینا شهرهای بوده که معمولا کنیز ازش میوردن کلا میرفتن میگرفتن به عنوان اینکه نا کفارن زن و مردم میکردن میوردن تو بازار میفروختن و به هر جهت زن خدا آدم رو که اصلا اسمش اگه میوردن به, به ناموس بابا برخورده اسمش رو اگه ببرم که تو محل ما خدا اون سه دو سنه برقار بچه نداشت حالا هم پسر داشت مثل پسر صدا میکرم بچه نداشت صدا میکرم اصلا آقا آقا حسن بردر زنش اسم خود خانمو نمیشد بیارن اون اصلا چیز بود بنابراین تا چه رسد که بیاد در منظر ما او از زیباییش تریف کن زیبایی زنانهی که دیده میشد ز خصوص آدم های مدرسه های مفصلی برای این کندیزان ترتیب می دادن. به اینا همه مقدمات علوم برای مباحثه کردن فقه و اصول و شهریات دونم و فلسفه و منطق و همه اینا بعد نرد باختن چطرنج باختن رقصیدن ساقی کردن عرض کن ساز زدن، همه فنون دلبری رو به اینامی آموخدن و البته هرچه آموزش ای این رو بهترن شد قیمتشون هم بارد و اینا رو به قیمت گذاب یعنی این در حقیقت کالای بود که اون فنده خودها دختر بچهی رو که می آوردن این به عنوان ماده اولیه بوده بسی خام بوده می آوردن و این رو تربیت می کردن عملش می آوردن و بگیرن هم گروه می بله استاد بودیان دیشان های بوده رو چیزا اروپایی خیلی بحشیانه تر عمل میکردن و البته نشونه در حقیقت بود که بردار که می آوردن فقط مثلا به گاغا هم دیگه فکر این که مثلا این بابا استاد خیلی خوب مرابتکاریه اگه بیان کار مرابتش بکنه ست تان کاسبه فکر نمی کنیم می بستش تو زمین شو یا تو چیزا پارو بزنم توی کشتی که دیدین تو فیلم ها روش اونا خیلی روش خشن بود ولی در اسلام اینطور نبوده یکی از کارهایی که بوده مکاتبه بوده مکاتبه بودت از این بوده که کسی که خریده بوده گلام کنیزی رو و اون گلام یا کنیز ساب صنعت بوده پیش میگفته که میگفته گلامه مثلا میگفته که من گلام کنم نجارم حلبی سازم آهنگرم چی هستم روزی اینقدر میتونم کار کنم میگفته خیلی خوب تو قیمت قرارداد میذاریم، تو بری کار کنیم، ما پنجا تون هم، مای ست تون هم، درم بدی تا پول تمام شد تمشب آزار کشه. اینه شخصای مکاتبی بود. و میگفتن که مکاتب، یعنی اون بندهی که مرد مکاتب است، تا زمانی که یک قرون از پولش باقی مونده همونجور بنده است. یعنی این بنده بودنش نزد نمیشود که قیمتش نزد شد. المکاتب و عبدون حتی بقیه علیه اون یعنی مکاتب همچنان بنده است تا دادت یه دون هم داد آزاد باشی و هر حال در اسلام راه های خیلی زیاد برای آزاد کردن بردگان اینا پیش پیشبینی شده یک دوم اینکه که ما در تاریخ میبینیم که مثلا مادر خلیفه کنیز آزاد شده پاچه بزرگ پدر سلطان محمود غزنبی، اولین کسی که در اسلام لقب سلطان به خودش گدرش پدرش تکین رو به غلامی در بازار بروک شد و بعد صفحصاله شد خریدارش هم مردی بوده هم علتکیم که خود اونم غلام و آزاد شده بنابراین در اسلام صورت دیگه داره غزیزیه که متعالیه هم نشد خود آخونده اینو همه هست فروش پروش بردر کنار برای اینکه به عنوان اینکه این نداره حالا دیگه کسی برده نمیخریه بفروشی که احکامش رو بگی متجد دام که وارد هیچ کدوم این کار از جمله او آخون دام که نمیفهمن که این فواید اجتماعی داره یعنی الان مطالعه اون احکام که هست ازش میشه استنباطه تاریخی و جامعه شناسی کرد که رفتار با این برده ها چه جوری بوده واس چه جوری بوده چی بوده چی نبوده اینا رو یک کار ندارم کار ندارم الان این مسائل. اگه شما حوصله نماد میتونید بریم و دنبال کنید. کتاب 1001 شب کتاب سایه گفتن میگم 1000 تا میخواد میتونید بخونید. اونجا بسیار داستان ها راجع به طرز تربیت این تنیسان و رفتار با این تنیسان و مسائل مختلف ممکنیزان. در اینجا کلامم بود. پس اونجا می توانید کنید. یکی از اسناد این بار اونکید به هر حال. از زمایی از رایی ایتش هست. یه ترجمه شدار ندارید. حقیق فارسی اگر هم انگلسی جو بخوام ترجمه برتن. ریچارد برتن. این غیر از اون هنالچی سینما و داها جا. ریچارد برتن، مالقرن 19 این هزاری ترجمه کرده در 10 جل و 6 جلدن هواشی و تعلیقات و توضیحات بهش نوشته وان تا اوزان است وان نه اسمش نید. نید و چند بار چند هم همون وقت اول 19 چاپ شده دونم اخیران چاپ شده من به قیمت خیلی عرضونی هم خریدن 16 جل در 17 دلو این ترجم فارسی هستش اون مقصد مارم حاصل می‌کنه. کنه باید. یه دون ترجم همیچتر نشده این چاپ نشده عبداللاتیف تسوجی تردیز حاجمالو کو... باشی می گفتم یه سری شهرها وسمخیت هستن این شهرها که بارد از فتا پوتن خلر پشمیش حسا خما یهما روم شی غرمار سغلا کش و شاید یه که دیگه هم هست اونها رو بزرگ ذهن ندارم اینا شهرهای بوده که معروف بوده که اینا زیبا درشون خیلی هست در این چیم که بردر جان کشم یک و توی یه قزل دیگر خواجه هست اون قزل اون هر وقتی که گفتند بر وصف آن شمایل هر کوشمید گفت لله در رقاقه باز ده بر یک دیگه در برد باش این ها سب هم می‌بیند که دارم می‌گه که دل دادم بیار اینجا دفت خانداره گشت واز نگشتی شاید درستش گشت من سوادم نگشتی دیگه این دیگه دو جا قرارت چاپی نمی... نمیتونه باشی غزل سی ست بیت 5 یه دل دادم به یاری شوخی کشی نگاری یا گشی نگاری مرزی که تو سجایا محمود تو پسار برحال این اسم شهریست و شرمشه شر رو استویزه من نگاه میکنم حتما گشتی که دیگه الان وقتی دو جا هست دیگه غلط چاپی که احتمالش زهید میشه کو حریفی گشت سرمه که پیش کرمش عاشق سود ده نام تمنا ببرن برای که تمنا که کردی اگر قبول نکنن سنگ رویخ میشه خیلی بد میشه دیگه کاش که آدم بکنه و جواب سهر بودن خیلی بد اینی که میگه کجا از اون حریف سرمست که آدم بتونه اسم تمننه رو پیشش بگاره مقصد نازکی مثل خاجه باقان آز خزان بیخبرت میدینم آه هزان روز که بادت یعنی باد ترا یعنی باد گل تو ترا بگاره ته زمیر از کلمه رعونته رعونت معنی خودپسندی اصلا معنی خودپسند پسند خودم اسمایی است کنم که رعنا البته عدم خودپسند لابد یه چیزایی هم داره که از خودش خوش میاد دیگه یه که دی کم, کم متعاده زیبا هم نشو. ولی رعنا من خود خودپسند اصلا صفت خوبی هم میست ولی خب معشوق همیشه بهنایی هم نیکنیم اما گل رعنا زاقینات یه نوعی گل یعنی حتما گل سرخه به دلیل اینکه گل به معنی گل سرخه گفتم براتون که نیست ولی گل رعنا یه نوعی از گل این نوعی بله یه وای از اونست که این گل تو رو باق ببره تو خیلی از خزان بی خبره گل رعنا نوعی از گل سو گل گل آخه گل برنی گل سو برسند سهدی آخه گل گل حتی مثلا محط حت داره گل دروی سهدی داره گل دروی به یک روی با تو دردی کرد دگر روخش به خجالت به زعفران مانده یه گلای بودی یه سرخ میره ولی اینا ظاهران گل و گل اصلا منی گل سرخ بشه مقصودش اینجا این است که آدم نواد قافل بشه چرخ فرق در کار و هر روز یه چیزی امتیازی روزادن میگیر و یه کلک میگویدن میزن رهزن دخ نخفته است این ها و دقیقه ها و عمر ما یه مداری ثانیه هست دیگه ساعتی تو یه مداری ما شده یک دون از اینا زیاد دیگه نخواهد شد. و تمام این لحظات داره میره داره میره می دیگه برگشتن نداره ها نموز اصری جپون جلو روم می‌دیدم تو دانشگاه داشتم یا تو راه بود، به نظرم دانشگاه بود داشتم می‌رفتم، یعنی جلو من بود رو گردن گلوف تو روشت گرس و فکل پشنگ و موهای سیاه پشنگ، همیز و جغم بودی که با همه‌ی اون خلعت دیوهای حسن و تدویم نگاه کردم، با خودم فکرم، خب ما به روزی همونجوری بودیم، حالا با قطورای حجم گذاشت نوبت ماست هر کی سپر هندزه نوبت آسیا به نوبت او و اون نوبتمون اون برن به خاطرش بدونه خاطر این مینه تو به هر حال مساله این است که میگه رهزن در نخوافته است هیچ وقت نمیخوابه مشو ایمن است ایمن ثراته موال آمنه اینو من قبلا هم در این کلاس گفتم تا چون دوستان تغییر می کنم اگه ادهی جدید و گروت می آم مثل روزخون هر که هر مستمعی که میاد و روزش از سر میگیره کیره برده روزه از سر می گیرم می بخشم کسانی که می دونن یه قاعده داریم در زبون فارسی او این است که بعضی علف ها رو تبدیل می به یه مثلا به جای سطلاح می گیم سلی. صالحهاس عربی نیست عربی اصطلاح جمعش هم یا به جای جاهاز میگیم جهیز به جای حساب هستی به جای اعتاب عتیق به جای رکاب رقیب اینا چاله کلمات عربی است کلمات فارسی هم مثلا کاشیا به جای افتادن میگن افتیدن یا به جای ایستادن میگن اسیدن به وسیله خودش اسیدا این قاعده به هرچن اسمش کم بی بهش میگن قاعده اماله یعنی میل دادن الف به سمت ي با اون کلمه رو میگن موال یعنی کلمه که مورد اماله قرار گرفت. کلمه ایمن بوده عامل امن اسم فاعل از مصدر امن این چیزی که در امره در فارسی شده ایمن که من یادم خدا رحمت کنه ورمین استاد من مرمون گروزافر رو داشتم شاهنامه قدمتشون امتحان میدادم در طور دفتری و یه از من پرسیدن که ایمن چیه و من ندیده بودم دامشتی بودم با ندیده بودم در فرهنگونام یک لحظه تنبول کردم که مردم استاد توجه کردم که من دارم فکر شد گفتم باید اماله بشید بلی ممال آمن است ایمند ممال آمنی برنید دارم اما چون یک کلمه دیگر هم داریم عیمن به کلی کلمه دیگه یمین به معنی قسمه و به معنی دست راست یمین به دست راست عیمن یعنی مال راست و وادی عیمن ترکیب قرآنی است در دسته موسی آمده به وقتی حضرت موسا زنیش ورداش دختر شوهایی به پیغمبر رافت دادن و اومدن رفتن و را بارون گرفت هوا سر شد و زنه که هم دردش شد که درد زادن گرفتش ناراحت و سرد اون کاردش موسا دیدی سوی, سوی آتشی از این جنیه به زنگرشش بیرد شما اینجا باشید من برم به سمت این وادی ایمن یعنی بیابان سمت راست شاید یه ذره آتش برای شما بیرم یه قبستی بیارم، یعنی یه گیرونه یه آتش کوچیکی که شما شاید گرم میره، میره میره میره میره میرسه به اون محل نور مینه که آتش نیست درخت سبز از توش نور درمی میرسه اونجا خطاب از حضرت حق میرسی که در حضور حق باریافتی کفش دو در دو در دیش فخ لعنه حلیک این نکه بالگاد المقدسی کن دو بعد میگه خطاب رسید از حضرت حق بهش که ما تلکه به یمینه که یا موسا یمین اینجا به این دست راست چیه در دست؟ در آله یا اصایه ببین اصایه در درس شانوی مفصل گفتیم که اساس جوزه وسائل حکمانی اصلا این در درداره همیز هم اصلا آقای و حکمه برسیم یه اصای اصا این اصای موجزات است که از شعهی به پیغمبر پدرزنش گرفته اتوک که ها اشتکیه می کنیم و احوش با علاقه و ها بلیا فیها معارب اوخرا ورا من فایده های دیگری هم داره بعد میگه که از حضرت خطاب رسید که بندوز زمین تو اندر زمین تو اقلصوصه اژدها موسات ترزید و قوم و اسرائیل به نفره احتياط فنی قاعد اون شو ناله گفتن که نه نه گفت بیگیرش و بگیرش و فرستاد فرعون تلکی دوباره با گفت جورا همین استاد ما مرحوم دروزانفر درس می‌فرمود اینجا رو بعد گفتن که خیلی جا و تعجب است که انسان شرف همصحبتی بازا و حق تباید به تعالی برای او نصیب بشند با خدا در باری فواعد عصا هست برها وادی عیمن در قرآن آمده منی هم بیابان نسره اینجا و این که یه مردار زیادی از اسطلاحاتی که یا حافظ آماده این اصطلاحات قرآن نیست مثل همین بادیه من شبان بادیه ایمن جایی رسد به مراد که چند سال به جان خدمتش او ای کند یا مثلا قبس زاطش وافی ایمن نه نه قرم و بس موسی اینجا به امید قبس قبس که میشه تو صابون فارسی نیست این اصطلاح لا الیاتی من ها به قبس لانکم تسکلون آیه قرآن این قرار از این تقدیم این تقدیر آماده است. ایمن و ایمن دو تا هست. معمولا ایمن وادی ایمن میاد ولی در هر توجه حواसत داشته که ایمن در حالت از عامن و ایمن یعنی دست. لحظه در نخفته است. من شو ایمن او اگر امروز نبرده است که فردا ببره. این حد در خیال این نم لعبت به هوس میبازم لعبت بازی یعنی خیلی شب بود لعبت یعنی عروسک لعبت فن خیام هستی که ما لعبتکانی و فلک لعبت باز از روی حقیقت اینا از روی مجاز بازیچه‌ میکنیم در نطفه وجود رفتیم به صندوق عدم یکیکوار وقصت تخم شاپوزی همین رو حرکت میوجه امینات میزنه بعدش هم جمع میکنه وسط سنتورش ما هم تو این خیال میکنیم اینجا که گفت خیال بسته که من شیر مرد برناهم او که واقسغ نفس نبهره برنای بعد آرز کنم که در خیال این همه لغبط به هوس میبازم بو که بوک مخفف بود که یعنی به این امید که بعد ها این کت تعبیر شده به بوک به همین معنی امیدواری بوک و بوک مگر بوک و مگر یعنی در تردید بودن که آیا میشه آیا نمیشه این خود میشه میاد نمیاد این میشه میگن بوک و مگر بوک همین بوته و بوکه هست در خیال این همه لعبت و حوص نیبازم بو که یعنی به این امیر که صاحب نظری نام تماشا رو که به چهل سال دلم جمع آور چهل جز عددهای خیلی طرف توجه یعنی همتا ممکن بود حافظ پنجاه سال شد سی و پنج سال طلب ایر بکرده ولی چهر جز عددهای کامله و یک و دو و چهار و پنج و هشت قابل بسمته و خیلی عدد مرتوجه در ادیان در عدیان اصلا اعدادی که فوق العاده داشتن مرتوجه این است که چهر هم جوش علم فضل سال دلم جمع آور. هر ثمان مرگست ترکانه به گهما بگرم بنده در, غزل در ذهن داشتن بود در مرگست مستانه الانجا نگاه میکردم دو هفهش نسخه که سه تا و سه تا هشت نسخه مرگم خاندادی داشته توامش ترکانه است و نرگس ترکانه گفتم که ترک در ادب فارسی و اقل دوره های حافظ سعدی شاید دوره کاجال اینا نفهمی کنه چی میگن متوجه نبودم ولی تا دوره حافظ به تو رو هم ترک به منی چشم با دنیاست که از طریق همون قلام و کنیز می آمدن با ترکه یعنی چشم همون چشم چشم, چشم،, چشم با دنیاست و خود شاق شجاق مادرشون ترک بود یعنی کنیز ترک بود قیافه ترکانه باشه زلف صاف چشمای بازونی و قد بلند و رهنا چه زیبایی بود علاوه بر این نرسیس هم بود یعنی هم زیبا بود هم دلش میخواست که مردم این زیبایی رو تشخیص بدن و تعریف کنند و قول شما عبدیشیه خودم از که این از که نرگس تورکان و ما ببرد اعتمال این هست عرض کردند که اشاره به شاه شجا باشه و همه این مسائل از هم گل مانندی از شاه شجاوش لازمه یا شاشتن چشم مست پردن مشروبه یا اصلاً چشمی که نخیل چشمی که دل آدم رو میبره این مست <تصفح> ah, جز زیبایی نخیل نخیل مستی دست بل از هم دویل تنجم نام تمشونه برایم میگه من این هم عروسکار دارم می میکنم شاید یه صاحب نظری بگه خیلی خوب من میمون میبین اسم تماشا پس اینجا تماشا به منی دیدنه نه دم... نه منی با همراه با. بانگ گاوی چه صدا بازده هم صدا اکو اکاس صدا فارسی داره هش باک واک پاک همون از که در نوا و آوا و آواز و واجه هست به عنی صدا در فرانسه میگن نوا به میگن روا همین وایس این میشه وایس باش پشت واک یعنی انعفاس صدا که عربیش میشه صدا و این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا اما بانگ گاف ارز کنم که گفتم که وقتی که موسا جماعت بنی اسرائیل رو جمع کرد و از نیم خواستم بگردن گفتن که جده نیم و جلو افتاد و آب نیم شکافته شد تو طرف کشد داخت داخت این دا. و منطبه های ده پر ماه خیلی